دوستان، آیا تا حالا شنیدین که بعضیا میگن میتونم ببخشم اما نمیتونم فراموش کنم؟ خب، یکی از حقایق عجیبی که ما در کلام خدا میبینیم اینه که خدای ما نه تنها میبخشه بلکه حتی تصمیم میگیره به یاد هم نیاره. این حقیقت شگفتانگیز در اصم در کتاب های اول و دوم تواریخ به چشم میخوره. به ادامه بررسی کتاب مقدس به دقت گوش کنین. این شما و این معلم ما یک بار دیگه وقتش رسیده که کتاب مقدساتون رو بردارید و در درس دیگری از کلام قدوس خداوند با ما همراه باشید به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید لطفاً کتاب مقدستون رو باز کنید و اول تواریخ رو بیارید تا با هم دیگه به بررسی کتاب مقدس ادامه بدیم حقایق شگفت‌انگیزی هستند که خدا میخواد امروز ما اونها رو یاد بگیریم اما قبل از اینکه وارد کتاب بشیم میخوام که یکی دو چیز درباره کتاب اول و دوم پادشاهان بتون بگم. میدونم برای درک این نوشته‌ها باید اونها رو خیلی خوند و چون ما به صورت کلی بحث میکنیم، میخوام این کتاب‌ها رو براتون یک جا جمع کنم تا اینکه بتونید اونها رو بخونید و برداشت بیشتری از اونها بکنید. اولا در اول و دوم پادشاهان ملاحظه کنید که خدا با مسئله پادشاهان موافقت میکنه. در واقع او هرگز نمیخواست که اون قوم پادشاهی داشته باشند. صبوری خدا رو درباره اون پادشاهان شریر ملاحظه کنید مخصوصا درباره پادشاهی شمال و ملاحظه کنید خدا قبل از اینکه بلای اسارت رو بر اونها بیاره چطور صبورانه از این پادشاهان درخواست میکنه و به اونها هشدار میده بالاخره این رو هم ملاحظه کنید که خدا حتی به دعای پادشاهان شریر هم پاسخ میده و این مسئله برخی سوالات الهیاتی رو پیش میاره مثلا پادشاهی به نام یوهواخاز که شریر بود دعا کرد و از خدا کمک خواست و خداوند به او گوش کرد. وقتی خدا به دعای پادشاه شریر پاسخ داد و او را از دست ارامیان نجات داد، این سوال پیش اومد. بسیاری از مردم بر این باورند که خدا تنها به دعای ایماندارانی پاسخ میده که در ارتباطی سمیمی با او هستند و با خدا رو راست هستند. من چنین حقیقتی رو در کتاب مقدس نمیبینم. بر طبق کتاب مقدس، خدا دعاهای باجگیران رو هم میشنوه خدا دعای گناهکاران رو میشنوه و دعای این پادشاهان شریر را هم میشنوه. امروز اگر پسر مرد شریری تصادف بکنه و آسیب ببینه و این پدر شریر در مقابل خداوند سجده کنه و برای نجات پسرش دعا کنه آیا خدا دعای او رو میشنوه و پاسخ میده؟ به اعتقاد من خدا دعای همه رو در هر زمانی میشنوه. فکر میکنم که این حقیقت در کتابهای پادشاهان برای ما به تصویر کشیده شده. در کتاب پادشاهان شما نه تنها صبوری و محبت خدا رو نسبت به پادشاهان شریر میبینید بلکه میبینید که خدا عملا به دعای این پادشاهان شریر هم جواب میده. نشانه رحمت خداوند رو ملاحظه کنید. در حالی که پادشاهان شمال میخواستن سقوط کنند و از بین برند و دیگه از اونها خبری شنیده نمیشد بسیاری از افراد پادشاهی شمال به پادشاهی جنوب پناه اون پناهندگان نشانه از رحمت و محبت خدا هستند. اون پناهندگان به ما میگن که چرا یهودا پادشاهی جنوب اینقدر قوی شد. اون پادشاهی قوت گرفت چون که بسیاری از افراد پادشاهی شمال قبل از سقوط این پادشاهی به یهودا پناهنده شدن. این پناهندگان محبت و رحمت خدا رو ظاهر میکنند. وقتی نگاه می‌کنیم که خدا در صد ناچیزی از باقی پادشاهی شمال رو قبل از سقوط و انهدام این پادشاهی نجات میده، اون وقت این پناهندگان محبت و رحمت خدا رو به ما نشون میدن. اول و دوم تواریخ به دنبال اول و دوم پادشاهان اومدن. اول و دوم سموئل و اول و دوم پادشاهان ای از تاریخ رو از هزار قبل از میلاد تا 500 قبل از میلاد دربر بر می اول و دوم تواریخ همون دوره از تاریخ رو مرور میکنه و در دستبندی قدیمی تر کتاب های قدیم تواریخ رو با ازرا و نهمیا در یک ردیف قرار دادن. در متن ابری، وقای نگاری در کتاب های ازرا و نهمیا و تواریخ آنقدر نزدیک به هم هستند که بسیاری از محققان اعتقاد دارند که ازرا هر سه این کتاب ها نوشته. در بندی بعدی کتاب‌های عهد قدیم بود که کتاب‌های تواریخ در ردیف کتاب‌های سموئیل و پادشاهان قرار گرفت چون که این شش کتاب همگی یک دوره از تاریخ رو در بر می‌گیرند وقتی متوجه میشیم که کتاب‌های تواریخ همان دوره تاریخی سموئیل و پادشاهان رو تکرار میکنه، باید این سوال رو بپرسیم که چرا خدا این دوره از تاریخ رو برای دومین بار تکرار میکنه؟ جواب‌های متعددی برای این سوال هست اولین جواب اینه تکرار کردن اساس آموزش هست اگر تکرار نکنید یاد نمی گیرید. اگه من از شما بخوام که هفت رو در 8 یا 8 رو در 6 ضرب کنید، احتمالا شما میتونید اون رو در ذهنتون انجام بدید. اما اگر از شما بخوام که عدد سی و هفت رو در عدد 20 و 23 ضرب کنید، شما احتمالا به یک قلم و کاغذ نیاز خواهید داشت. میتونید ارقام کوچک رو ضرب کنید چونکه جدول ضرب رو با تکرار و تکرار یاد گرفتید. پس تکرار می کنمم که، تکرار کردن اساس آموزش هست اگر تکرار نکنید یاد نخواهید گرفت در کتاب مقدس تکرار کردن به منظور آموختن هست اما همینطور برای تأکید هم هست آیا چیزهایی را که در کتاب مقدس تکرار شده ملاحظه کردید؟ مبحث آفرینش دو بار در کتاب پیدایش تکرار شده شریعت موسی در کتاب تسنیه تکرار شده زندگی نامی ایسای مسیح چهار بار در عهد جدید تکرار شده و این دوره از تاریخ قوم یهود هم در کتاب‌های تاریخی پادشاهان تکرار شده. اگر تکرار در کتاب مقدس برای تاکید هست، دقیقاً بر چه چیزی در این کتاب‌های تاریخی تاکید شده؟ وقتی که خدا این برهه از تاریخ رو دو بار تکرار میکنه او بر چه چیزی تاکید میکنه ما حداقل یک جواب برای اون سوال پیدا کردیم. پادشاهی خدا چیزیه که در نوشته‌های تاریخی سمویل و پادشاهان اهمیت داره و در تواریخ تکرار شده. پادشاهی خدا در عهد جدید هم مفهومی مهم هست. عیسی و یحییای دهنده پادشاهی خدا رو موعظه می‌کردند. عیسی گفت که این پادشاهی باید اولویت اول ما و اولین درخواست ما در دعاهامون باشه. بنا به گفته عیسی پادشاهی خدا منتهی به چیزی میشه که معنیش تولد دوباره هست. عیسی به رهبران مذهبی گفت اگر اونها میوه پادشاهی خدا رو به بار نیاورن خدا پادشاهی رو از اونها میگیره و اون را به کسانی میده که ثمر بیارن عیسی به آنان گفت پس شما را میگویم که پادشاهی خدا از شما گرفته شده و به قومی داده خواهد شد که میوه آن را بدهند هر که بران آن سنگ بیفتد خورد خواهد شد و هرگاهان سنگ بر کسی افتد او را در هم خواهد شکست چرا خدا بارها در تاریخ مقر فرماندهیش رو جابجا میکنه از سرزمین مقدس به ترکیه، از ترکیه به اروپا، از آلمان احتمالاً به انگلستان، از انگلستان به امریکای شمالی و شاید از امریکای شمالی به جای دیگر. خدا مقر فرماندهیش رو بارها حرکت داده، چون که مردم میوه پادشاهی خدا رو نیاوردند از اونجایی که میوه پادشاهی خدا به نظر میرسه که موضوعی جدی هست، اون پادشاهی خدا رو بسیار، بسیار با اهمیت میکنه. ادشاهی خدا مخصوصاً زمانی اهمیت پیدا میکنه که شما به این فکر کنید که چه پیش خواهد آمد در دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد الهیدانان جواب این سوال رو آخرت شناسی میگن مطالعه چیزهای آخر وقتی که شما به آینده نگاه میکنید اونطوری که آینده در آیات نبوتی کتاب مقدس نشان داده شده این سوال رو میپرسید چه اتفاقی برای دنیا خواهد افتاد پادشاهی خدا بخش بسیار با اهمیتی برای جواب اون سوال خواهد بود. وقتی مردم بازگشت سانویه عیسی مسیح را مطالعه می کنند، بعضی به این نتیجه می رسند که ایسا قبل از استقرار پادشاهیش بر روی زمین باز خواهد گشت. و برخی دیگر بری نقیدند که عیسی پس از استقرار پادشاهیش بر روی زمین باز خواهد گشت. بعضی بری نقیدند که پادشاهی عیسی مسیح تمثیلی است. اونها باور ندارند که پادشاهی عیسی مسیح عملاً بر روی زمین مستقر بشه. تمامی کسانی که بازگشت ثانویه مسیح رو مطالعه میکنن، موقعیتشون رو در رابطه با پادشاهی شرح میدن. برخی از مهمترین طبقه بندیهای الهیاتی، پیامد موزه است که ما با توجه به پادشاهی خدا در رابطه با بازگشت ثانویه عیسی مسیح اتخاذ میکنیم. وقتی که من در مدرسه الهیاتی تحصیل میکردم، درباره یک قبل از هزار سال صحبت می کردیم به این معنی که عیسی قبل از پادشاهی هزار ساله خواهد آمد. قبل از جنگ جهانی دوم بسیاری بر این باور بودند که عیسی بعد از پادشاهی هزار ساله خواهد آمد. معتقدان با آمدن عیسی بعد از هزار، بر این باورند که اوضاع روز به روز رو به بهبودی خواهد رفت و همه چیز آنقدر عالی خواهد شد که ما پادشاهی خدا را رو بر روی زمین خواهیم داشت. و بعد از اون عیسی خواهد آمد. این عقیده قدیمی بعد از هزاره بود. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ های گرم، جنگ های سرد، همه این جنگ ها این نظریه رو بیعتبار کردن. به نظر نمیرسه که اوزا رو به بهبودی باشه، به نظر میرسه که اوزا روز به روز وخیمتر میشه. بنابراین افراد زیادی دیگر به این عقیده معتقد نیستند. اگر شما جز اون دسته از کسانی هستید که اعتقاد دارید پادشاهی خدا تمثیلی هست، باید گفت که شما معتقد به بازگشت مسیح نیستید وقتی که به آینده نگاه می‌کنید پادشاهی مسئله بسیار مهمیه نظر شما درباره پادشاهی آینده چی هست مسئله پادشاهی که ما در کتاب‌های پادشاهان می‌خونیم بسیار مهم است به این دلیلی که این شش کتاب کتاب‌های پادشاهان خونده شدند خدا میخواد که ما این مسئله رو درک کنیم که او پادشاه هست. خدا میخواد افرادی رو داشته باشه که پادشاهی او رو شکل بدن و به این دلیل که خدا این دوره تاریخی رو دوباره به ما میگه. سومین دلیلی که چرا خدا تصمیم گرفته این بره از تاریخ رو دوبار برای ما بگه اینه که بسیار مهمه که درک کنیم قوم خدا خدا رو به عنوان پادشاهشون رد کردن. این مهمه که بدونیم ما هنوز هم عواقب اون رد کردن رو تحمل میکنیم وقتی مردم خدا رو به عنوان پادشاهشون رد کردن این سبب اصارت شد بعد از اثارت ها دیگه هیچ خبری از پادشاهی شمال نمی داستان با تمرکز بر پادشاهی جنوب دامه پیدا میکنه به قول دانشجویان نبوت که کار امهای بزرگ خدا رو در این دنیا مطالعه میکنن وقتی که مردم پادشاهی جنوب به اصارت بابل رفتن مبدا جدیدی آغاز شد اونها این مبدع رو زمان غیر یهودیان خاندن. خدا میخواست جایی حکومت کنه که خودش پادشاه باشه و مردم رعایه او. تنها چیزی که خدا برای تأسیس این حکومت خدا سالاری لازم داشت یک کاهن نبی بود که با مردم حرف بزنه و اونا رو رهبری کنه. اما وقتی که بنی اسرائیل اون ترتیب رو رد کردن، خدا گفت بسیار خوب. شما در بین غیر یهودیان پراکنده خواهید شد. یعنی در بین غیر ایمانداران و غیر ایمانداران بر شما حکومت خواهند کرد بعد از اسارت بابل خدا از طریق پادشاهانی مثل داوود که می‌خواستند تمام اراده خدا رو به جا بیارند کار نکرد داوود قلبی خداجو داشت و می‌خواست که اراده خدا رو انجام بده خدا حتی از طریق پادشاهانی که گاهی اراده او را انجام می‌دادند و گاهی اراده رو را انجام نمی‌دادند کار نمی‌کرد خدا از طریق پادشاهانی مثل نبوکت نصر و کوروش کبیر که پادشاهان بت بود بودن بودند کار میکرد. این مفهوم در دنیای سیاسی امروز هم کاربرد داره. اگر دنیا زیر و رو میشه، آیا این به خدا ارتباط نداره؟ اگر قفلهای آهنی بر درهای کلیساها زده میشه، اگر عضویت و خدمت در یک کلیسا غیر قانونی محسوب میشه، اگه بدونید که وقتی بیش از پنج نفر از شما برای مراسم پرستشی کنار هم جمع میشید، دستگیر میشید، اگر این اتفاق بیفته، آیا خواهید گفت خدا مرده؟ خدا نمیتونه کاری بکنه؟ این کتاب تاریخی به ما میگن که وقتی غیر ایمانداران بر قوم خدا حکومت میکنن، او بیکار ننشسته. کتاب های تاریخی به ما میگن که وقتی قوم خدا به اسارت رفتن، خدا توسط نبوکت نصر و کورش کبیر کار کرد. خدا به کارش از طریق حاکمان مشرک ادامه داد. اگرچه خدا یک حکومت خدا سالاری رو ترجیح میداد، اما به قومش اجازه داد تحت فرمان فرمان روایان مشرک زندگی کنند و در بین قوم مشرک پراکنده بشند. امروزه هنوز هم این پراکندگی ادامه داره. خدا مبدع جدیدی آغاز کرده. قوم خدا در دوره بی ایمانی زندگی می کنند. به این دلیل که وقتی ایسا پادشاهی خدا رو شرح میداد در موعظه اش چنین گفت. به این سو نگاه نکنید. دنبال جایی یا کشوری نگردید. پادشاهی خدا درون شماست. پادشاهی خدا درون هر فردی هر زن و مردی هست که تصمیم گرفتند خدا پادشاه اونها باشه این افراد پادشاهی خدا در بین قوم بی ایمان و عمدتا تحت فرمان بی ایمانان زندگی می کنند. عیسی وقتی گفت شما نور و نمک جهان هستید منظورش این بود شما مانند نمک در دنیا پراکنده شده اید و باید طعم این دنیا را عوض کنید معنیش این نیست که هر کشور یا قومی که در پادشاهی خدا زندگی میکنند کشوری مسیحی یا خداشناس باشد بنی اسرائیل اون نقشه رو رد کردن خدا پادشاهی مطلوبی رو میخواست که میتونست جغرافیایی یا قومی باشه خدا میخواست که پادشاه اون قوم باشه و کاهن نبی داشته باشه که بتونه عوامرش رو با مردم در میون بذاره این میتونست ایدال ترین پادشاهی خدا بر روی زمین باشه و در دوره هزار ساله این پادشاهی بر روی زمین خواهد بود به هر حال قوم یهود اون طرح رو رد کردند و از اون زمان به بعد در تاریخ قوم یهود خدا هرگز بر هیچ قومی بر روی زمین حکومت نکرد. چیزی به نام قوم مسیحی وجود نداره. پادشاهی خدا در قلب افراد تجربه میشه. بعضیا فکر میکنند که اگر رئیس جمهور یا نخست وزیر مسیحی باشند ما پادشاهی خدا رو بر روی زمین خواهیم داشت و تمامی قوم ناگهان مسیحی خواهند شد. چون که رهبر ملی اونها یک مسیحی تولد دوباره هست. این طرز تفکر نشون میده که این دوره از تاریخ پادشاهی رو به خوبی درک نکرده ایم. خدا دو بار این دوره تاریخی رو برای ما تکرار میکنه چون که این دوره برای ما حائز اهمیته. اگر ما پیام این کتاب‌های تاریخی رو درک کنیم، میفهمیم که ما هنوز عواقب اون رد کردن خدا رو تحمل میکنیم. چهار رومین دلیلی که کتاب‌های تواریخ این دوره تاریخی رو تکرار کردند اینه که عزرا آشکارا بر این باور بود که تمامی داستان گفته نشده. درخت جدید متا اولین انجیل رو نوشت. چیزهایی بود که مرقس میخواست اضافه کنه و چیزهایی بود که لغا میخواست اضافه کنه. بعد پس از مدتی مرقس و لوقا انجیلهای خودشون رو نوشتند و بعد از اون 60 سال بعد یوحنا رسول انجیل یوحنا رو نوشت. 90 درصد چیزهایی که شما در انجیل یوحنا میخونید در انجیلهای متا، مرقس و لوغا وجود نداره. یوهننا هم فکر میکرد که کل داستان گفته نشده. وقتی که هر چهار انجیل رو میخونید و هر حال شما کل داستان رو میفهمید و در عهد قدیم از رای کاتب قلمش رو برداشت و نوشت چون که بر این باور بود که نویسنده اول و دوم سموئیل کل داستان اون بره از تاریخ قوم یهود رو نگفته. از را بر این باور بود که نویسنده سموئیل و پادشاهان اون بره از تاریخ رو از دیدگاه انسان با ما دیدگاه گذاشتند و از راه از جانب خدا برانگیخته شد که این بره از تاریخ را از دیدگاه خدا ثبت بکنه من به شما یک ماموریت میدم و شما را به چالش وا میدارم که کتاب‌های تواریخ رو با چهار کتاب سموئیل و پادشاهان مقایسه بکنید تا بفهمید که چه چیزهایی در تواریخ از قلم افتاده که در کتاب‌های سموئیل و پادشاهان با تمام جزئیات ریزش ثبت شده اگه شما این موضوع رو با جدیت دنبال کنید برد حقیقی بزرگی برای زندگی خودتون خواهید یافت محققین سپتوژنت از کتاب های به عنوان موارد از قلم افتاده یاد می‌کنند. این نام حساسی هست که اونها به کتاب های توریخ این عنوان دو کاربرد داره اولا اون عنوان معنیش اینه که مواردی هستند که وقتی این دوره از تاریخ بازگو می شدن از قلم افتاده در حالی که از را قصد داشت که تمام داستان رو به ما بگه. دومین دلیل برای اون عنوان اینه که از را بر این باور بود که وقتی خدا بر این بره از تاریخ نگاه میکنه چیزهایی رو از قلم میندازه دازه که صفحات بسیاری رو در کتابهای سموئیل و پادشاهان پر کرده بود. از جمله گناهان داوود و سلیمان با این حال دلیل دیگرش اساسا شاید این باشه که از را بر این باوره که سموئیل و پادشاهان این بره از تاریخ را از دیدگاه انسان گزارش کردند. از را داشت که این دوره از تاریخ باید از دیدگاهی روحانی و الهی گزارش بشه. تفاوت زیادی هست بین نگرش الهی و نگرش انسانی. اشعیا نبی در اشعیا 55 گفته که خدا با او صحبت کرده و گفته که راهای من راهای تو نیست و افکار من افکار تو نیست. خدا گفته که تفاوت زیادی هست بین روشی که تو چیزها رو به عنوان انسان میبینی و روشی که خدا فکر میکنه و چیزها رو میبینه همونقدر که بین زمین و آسمان فاصله هست تفاوت زیادی بین این دو نقطه نظر هست خدا بهش ایا گفت اگر نقطه نظر الهی و انسان رو با هم میخواهی به کلام خدا مراجعه کن چون که کلام خدا هست که دیدگاه من رو نشون خواهد داد به این دلیل که ما این دوره از تاریخ رو مرور میکنیم تفاوت زیادی هست بین اون روشی که خدا این دوره از تاریخ رو گزارش کرده و روشی که انسان این دوره از تاریخ را گزارش کرده تواریخ را با چیزی که قبلا در سموئیل و پادشاهان خوندید مقایسه کنید مقایسه این دو نظر بسیار مهیج هست مثلا به یاد خواهید آورد که در دوم سموئیل ما همه اون بابها را از یازده تا هجده خوندیم که همگی بر جزئیات گناه پست داوود و عواقب گناه او تمرکز داشتند وقتی از را این دوره از تاریخ زندگی داوود رو مینوشت به گناه داوود حتی اشاره هم نشد این از قلم افتادگی خبر خوبی هست. اون از قلم افتادگی به این معنی هست که بعد از اینکه من به عیسی مسیح ایمان آوردم و نجات پیدا کردم به گناهان من حتی اشاره هم نخواهد شد گناهان سلیمان هم از قلم افتادند گناهان سلیمان هم یکی از زیباترین از قلم افتادگی ها در کتاب تواریخ راه است چیزهای دیگری هستند که انسان از قلم نینداخته اما خدا از قلم انداخته. بعضی از اینها چیزهای ترسناکی هستند. مثلا پادشاهی شمال اسرائیل تماماً شریر بودند. هیچ پادشاه خوبی در تمام مدت پادشاهی شمال وجود نداشت. اینجا چیزهای وحشتناکی در پادشاهی شمال هست. وقتی از را این بره از تاریخ رو گزارش میکنه، وقتی که در مورد تجزیه پادشاهی صحبت میکنه، بعد از اون دیگه اشاره ای به پادشاهی شمال نمیکنه. پادشاهی شمال یکی از چیزهایی هست که از قلم افتاده که کاربردش به نظر من وحشتناکه همه ما می‌خواهیم که باور کنیم ما اهمیت داریم که در کارهای مهم سهمی داریم به عنوان ایمانداران همه ما باید اشتیاقی شدید برای ایجاد تحول داشته باشیم به با عنوان ایمانداران همه ما باید احساس کنیم که وقتی صبح بیدار می‌شیم کارهایی هست که باید انجام بدیم که به زندگی ما معنی ببخشه ما باید سرنوشتمون رو تشخیص بدیم و مأموریت روزمرهمون رو در زندگی بفهمیم. ما باید احساس کنیم که شمعی در یک شمدان هستیم. خدا این شمع‌ها رو روشن کرده و شمدانی رو انتخاب کرده که ما باید به لحاظ استراتژیکی در اونجا قرار بگیریم و اطرافمون رو روشن کنیم. ما بخشی از کاری هستیم که خدا در این جهان انجام میده و اون روز ما رو هیجان انگیز می‌کنه. حالا تصور کنید شما در دوره‌ای از زندگی خودتون طوری رفتار کنید که کلا زندگی و وظایفتون رو نادیده بگیرید چنانکه گویی اصلا وجود ندارید و خدا بخواد که این دوره از زندگی شما رو گزارش کنه و او در گزارشش تمام زندگی شما را از قلم بندازه این میتونه چیز وحشتناکی باشه این چیز وحشتناکی که فکر کنیم خدا اون دوره از تاریخ رو گزارش میکنه اون پادشاهانی که زندگی کردند و مردند و حکومت کردند و کارهایی که در اون پادشاهی شمال انجام دادند خدا به هیچ کدوم از اونها اشاره نمی کنه و اونها اشاره نشده چون که اونها شایسته یه هیچ کدام از اهداف و نخشه های خدا نبودند از قلم افتادن زندگی پادشاهان شمال در کتاب تواریخ از قلم افتادگی که قطعا خبر خوشی نیست در سمائل و پادشاهان تمامی پادشاهان به طور برجسته ثبت شدند خواه شریر بودند یا نه اما در تواریخ پادشاهانی به طور برجسته شهر داده شده که برای استقرار مجدد و اصلاحات سودمند بودند پادشاهانی در پادشاهی جنوب وجود داشتند مثل آصاف، یهوشافات، یواش، هزقیا و یوشیا که برای انجام کارهای خوب سودمند بودند. این پادشاهان در کتاب پادشاهان و تواریخ به طور برجسته نشان داده شدند به پادشاهان شرید یا بیتفاوت در کتاب تواریخ حتی اشاره هم نشده این به ما نشون میده که از نظر خدا چه چیزی اهمیت دارد. داره من این داستان یوشیا پادشاه رو دوست دارم. مردی به نام هلقیا وجود داشت که وقتی معبد رو تعمیر میکردند در اونجا کار میکرد. هلقیا تومارهایی از کلام خدا را پیدا کرد. مردم اونقدر رو به انحطاط رفته بودند و اونقدر مرتد شده بودند که تماماً فراموش کرده بودند که چیزی به نام کلام خدا وجود داره. هلقیا وقتی میگفت ببین چی پیدا کردم بسیار هیجان زده بود. ببینید اینها مستند این که های خدا هستند همون کلام خدا هلقی حق داشت تومارها کلام خدا بودند بالاخره اون تومارها برای یوشیا پادشاه خوانده شد و وقتی که یوشیا فرامین خدا رو شنید و فهمید که از فرامین خدا اطاعت نشده او از شنیدن کلام خدا به خود لرزید کشف هلقی و پیدا شدن اون تومارها بیداری عظیم و علاقه شدیدی به کلام خدا به بار آورد از مطالعه کتاب عزرا متوجه میشیم که ازرا از نسل هلقیه بود. هلقیه باید تأثیر عظیمی بر ازرا گذاشته باشه. ازرا معلم بزرگ کتاب مقدس بود. ازرا سهم بزرگی در بیداری و علاقمندی مردم به کلام خدا داشت. این بیداری در ایام یوشی آغاز شد. ازرا مردیه که عهد قدیم رو به شکل امروزی خودش طبقه بندی کرده. تمامی این چیزها که در تواریخ ثبت شده به این دلیل که کتاب مقدس در نظر خدا بسیار اهمیت داره. در کتابهای سموئیل و پادشاهان این دوره از تاریخ از دیدگاه حاکمان یا سیاستمداران یا ملیون گزارش شده. در تواریخ همون دوره از تاریخ از دیدگاه مذبح یا از دیدگاه معبد یا دیدگاهی روحانی گزارش شده. وقتی این کتابها را مقایسه می‌کنید به این نتیجه می‌رسید که کتابهای تواریخ تفسیر و گزارش دوباره کتابهای پادشاهان هست. به این دلیلی که در کتابهای پادشاهان همیشه گفته میشه آیا در کتاب تواریخ ثبت نشده؟ وقتی که در کتاب پادشاهان پادشاه خاصی رو مطالعه می کنید، نویسنده به شما میگه که تاریخ این پادشاه در تواریخ ثبت شده. کتاب پادشاهان به این دلیل از شما مراجعه به کتاب تواریخ رو می خواد چون که نویسنده ی کتاب پادشاهان که خود روح القدس هست، می خواد که شما پادشاهی خاص و یا رویدادی خاص را رو از دیدگاه الهی ببینید. مقایرت زیادی هست که میتونیم بهشون اشاره کنیم. در سمایل و پادشاهان تأکید بر روی زندگی، شخصیت و رهبری داوود هست. در تواریخ تأکید بر روی شجرنامه داوود هست یا بر روی خانواده داوود. خانه و دودمان داوود چیزی که از نظر خدا مهم هست و وقتی خدا این دور از تاریخ رو ثبت میکنه بیشتر بر این تمرکز داره. و دلیلی که در تواریخ بر یهودا تمرکز بیشتری شده همین مسئله هست. مسیحا قرار بود که از طایفه یهودا به دنیا بیاد. به این دلیل خدا میخواد که توجه ما را به طایفه یهودا جلب کنه. و به شرح موفقیتهای سیاسی داوود هم پرداخته. داوود در پادشاهی خودش برکت یافته تا اینکه به قوم خدا شادی بده. به همین دلیل خدا میخواست که او رو رهبری بزرگ بکنه. همونطور که قبلا اشاره کردم کتاب تواریخ سهم عظیم داوود رو در پرستش با وارد کردن موسیقی در پرستش نشون میده. در اول تواریخ 15 و 23 متن زیبایی هست که به ما میگه که داوود چطور گروه کور و نوازندگانش رو ترتیب میداده. داوود ارکستری بزرگ و سرایندگانی از لاویان داشت. هزاران هزار سراینده و نوازنده. در کلیساهای امروزی ما از رابطه‌ای که داوود بین پرستش و موسیقی ایجاد کرد لذت میبریم. سهم داوود در پرستش اگرچه در کتاب سموئل از قلم افتاده، ولی در کتاب تواریخ مورد تأکید قرار گرفته. در تواریخ ما شرحی را می‌بینیم که چرا داوود اجازه نیافت که برای خدا خانه‌ای بنا کند. در پادشاهان و دوم سموئل باب هفت فقط گفته شده که داوود اجازه نداشت برای خدا خانه‌ای بسازه چون خدا به خانه نیازی نداره. اما در تواریخ جایی که دیدگاه الهی رو داریم گفته شده که چون داوود جنگجو بود و خون زیادی ریخته بود خدا اجازه نداد خانه بسازه. در تواریخ است که شما متوجه میشید چرا پادشاه خوبی مانند یهوشفات با پادشاه شریری مثل اخاب در یک ردیف قرار میگیره. اونها نوههای مشترک داشتند چون که فرزندانشون با هم ازدواج کردن. احتمالاً به این دلیله که در اول پادشاهان 22 اونها یکجا هستند. یکی از مهمترین آیات تواریخ در دوم تواریخ به هفت آیه چارده هست در اون آیه شما وعده ای از جانب معبد خطاب به قصر می شنوید. از زندگی روحانی قوم به زندگی سیاسی قوم عهدی که خدا با قوم خودش می بنده. در مزمور بیست آیه سه می بینید که خدا وقتی قوم به تازه شدن نیاز دارند، برای اونها راه های ادالت رو فراهم می که جان اونها رو تازه کنه وقتی که برای تازه شدن جانهایمان به حضور خدا میاییم میفهمیم که خدا کارهای عملی میکنه. خدا به ما میگه بیایید و در راه های عدالت گام بردارید و اون راه های عدالت جان شما رو تازه خواهند کرد. راه های عدالت را در این آیه بزرگ ملاحظه کنید، اگر قوم من که به اسم من نامیده شده اند متوازه شوند و دعا کرده طالب حضور من باشند و از راه های بدخیش بازگشت نمایند، آنگاه من از آسمان اجابت خواهم فرمود و گناهان ایشان را خواهم آمرزید و زمین ایشان را شفا خواهم داد. خدا میگه که من آماده که ببخشم. آماده که شفا بدم. اما قبل از اینکه ببخشم و شفا بدم، راه های ادالت و پارسایی هست که میخوام قوم من در اونها گام بردارم. اون راه های پارسایی اینها هستند. اونها باید فروتن بشن، باید دعا کنند، باید روی مرا به و باید از راههای شریرانشون بازگشت کنن. شنیدم که رئیس جمهوری میگفت که وقتی این آیه رو در یک کتاب مقدس قدیمی می میبینه بعد از این آیه مادرش این چیزها رو نوشته عجب آیه‌ای برای شفای قوم ها. عجب آیه زیبایی برای شفای ملت ها. وقتی که رئیس جمهور در یک جلسه صبحانه صحبت می کرد گفت این چیزی که ملت ما نیاز داره ما باید خودمون رو فروتن کنیم لازمه که دعا کنیم و لازمه که روی خدا رو به و از راههای شریرانه بازگشت کنیم. اون موقع خدا میتونه صدای ما رو بشنوه و ما رو ببخشه و سرزمین ما رو شفا بده. دوم تواریخ به هفت آیه چارده یکی از بزرگترین آیات هست. به اعتقاد من این آیه ای هست که همه ما باید اون رو در قلب خودمون نقش کنیم. اولا به صورت شخصی و بعد به صورت ملی پذیرفته بشه. بیس مورد تفاوت بین تواریخ و کتاب پادشاهان و سمویل هست، کلید درک و رسیدن به این تفاوت و درک دلیل تکرار این دور از تاریخ قوم یهودینه. راه های خدا راه های ما نیست و افکار خدا افکار ما نیست. چون که خدا میگه افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نیست زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، همچنان طریقهای من از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. اگر بخواهید که دیدگاه الهی رو بفهمید، اگر بخواهید که تعادل بین راه و افکار خودتون و راهها و افکار خداوند را بدونید، تواریخ رو بخونید. وقتی تواریخ رو میخونید، یادتون باشه که در سموئیل و پادشاهان چی خوندید. چیزهایی رو که انسان از قلم انداخته، اما خدا از قلم نینداخته مشاهده کنید. و بعد چیزهایی رو که انسان از قلم نینداخته، اما خدا از قلم انداخته را هم مشاهده کنید. تفاوت نحوه گزارش خدا از این بره از تاریخ رو با نحوه گزارش انسان از همان دوره ملاحظه کنید. اون وقت پیغام حیرت انگیزی رو دریافت خواهید کرد. چه از نظر ارزشی و چه از نظر نگرش. چیزهای از قلم افتاده عنوان بسیار مناسبی برای کتاب تواریخ است. این خبر خوبیه که ما متوجه میشیم گناهان ما میتونه توسط خدا نادیده گرفته بشه. همونطور که گناهان سلیمان و داوود در تواریخ نادیده گرفته شده همینطور چالش ترسناکی هم هست وقتی که متوجه میشیم خدا پادشاهی شمال رو نادیده گرفته و از قلم انداخته خدا هرگز به پادشاهی شمال اشاره نکرده چون که افراد اون پادشاهی بر حسب اراده خدا فراخوانده نشده بودند دعا میکنم کنم که مقایسه شما از کتاب های تواریخ با کتاب های سمائیل و پادشاهان شما رو به چالش بکشه که دیدگاه خدا رو با دیدگاه انسان نه تنها در این دوره از تاریخ بلکه در عصر خودمون مقایسه کنید آیا در تاریخ امروز خدا به شما اشاره میکنه مانند داوود توبه کنید تا خدا به شما اشاره کنه گناهانتون تماما فراموش بشه و دیگر هرگز از اونها یاد نشه عزیزان چه حقیقت بزرگی که بفهمیم و باور کنیم خدایی که قدوس و عادله اگر ما فروتن بشیم و به گناهانمون اعتراف کنیم گناهان ما رو میبخشه و تصمیم میگیره هرگز اعمال بد ما رو به یاد نیاره. متشکرم که دانشجوی وفاداری هستیم. شما رو تشویق می کنیم که از دیگران هم دعوت کنین تا در این دوره ای که زندگی ها رو تغییر میده به ما بپیوندن چون که ما کلام خدا رو مطالعه می کنیم. هیچ چیز با ارزشتر از این نیست که بدونیم گناهانمون و تمامی کارهای بدمون کاملا بخشیده شده. اطمینان داریم که شما این لذت رو در زندگیتون تجربه کردین و تجربه می‌کنین تا برنامه بعدی امیدواریم که حقیقت محبت، بخشش و پذیرش و او شما رو دلگرم و حفظ کنه.